ده. چگونه یک همراه در مسئولیت می تواند همه چیز را تغییر دهد؟ راجر فیشر پس از اینکه به عنوان خلبان در جنگ جهانی دوم خدمت کرد، وارد دانشگاهی حقوق هاروارد شد و 34 سال را سرف کسب تخصص در فنون مذاکره و مدیریت اختلاف کرد. او پروژه مذاکره هاروارد را بنیان گذاشت و با کشورها و رهبرهای مختلف جهانی در زمینه راهکارهای صلح‌آمیز بحرانهای گروگانگیری و از سازشهای دیپلماتیک همکاری کرد. اما در دهه هفتاد و هشتاد و با افزایش تهدید جنگ‌های هسته‌ای بود که فیشر جالب ترین ایده خود را پرورش داد. در آن زمان فیشر روی طراحی استراتژی هایی متمرکز شده بود که می توانستند از جنگ هستهای جلوگیری کنند و یک حقیقت مشکل ساز را متوجه شده بود. هر رئیس و صاحب مسندی به کد مخصوصی دست داشت که می توانست میلیون ها نفر را قتل عام کند اما هیچگاه مرگشان را به چشم نمیدید زیرا. خودش هزاران مایل آن طرفتر حضور داشت. او در سال 1981 نوشت، پیشنهاد من بسیار ساده است. این کد پرتاب هستهی را در یک کپسول کوچک بگذارید و سپس همان کپسول را در نزدیکی قلب یک داوطلب بکارید. به ترتیب داوطلبی که کنار رئیس جمهور حرکت می کند، یک چاقوی قصابی بزرگ و سنگین را با خود حمل می کند. هر زمان رئیس جمهور خواست از تسلیحات ای استفاده کند، تنها راهش این است که ابتدا با دستان خودش یک انسان را بکشد تا به کد پرتاب موشک دست پیدا کند. در این شرایط رئیس جمهور می گوید شرمند جورج اما ده میلیون نفر باید بمیرند، او باید یک مرگ را به چشم ببیند و با معنای آن آشنا شود، شمایلی که مرگ یک انسان بیگناه دارد، خونی که روی فرش کاخ سفید ریخته می شود، این واقعیت در خانه مشاهده می شود، وقتی این موضوع را با دوستانم در پنتاگون به اشتراک گذاشتم گفتند، خدای من، این وحشتناک است، اجبار برای کشتن یک فرد میتواند قضاوت رئیس جمهور را تحریف کند، امکان دارد هیچگاه آن دکمه را فشار ندهد. در سرتاسر بحثمان روی قانون چهار روم تغییر رفتار، اهمیت ایجاد عادتهای خوبی که بلا فاصله حس رضایت به همراه دارند را تحت پوشش قرار دادیم. طرح پیشنهادی فیشر مکوس قانون چهار روم تغییر رفتار است. کاری کنید که بلافاصله حس انزجار ایجاد شود. همانطور که تمایل به تکرار تجربه هایی داریم که عاقبت رضایت بخشی دارند، از آن طرف دوست داریم از تجربیاتی که عاقبتشان دردناک است، برحضر باشیم. درد یک مدرس تصیر است. اگر یک شکست دردناک باشد، اصلاح خواهد شد. اگر یک شکست خیلی درد و غم به همراه نداشته باشد، نادیده گرفته می شود. هرقدر یک اشتباه، عواقب فوری و دردناکتری داشته باشد، خیلی سریتر از آن خواهید آموخت همینکه همین که لولکش از تعریفهای بد راجع به کارش بترسد، باعث می شود وزیفهش را درست انجام دهد. احتمال اینکه یک مشتری دیگر به رستوران مراجعه نکند، می شود، غذای خوبی ارائه کنند. عواقبی که بریدن رگ نادرست به همراه دارد، کاری می کند جراح مهارت بیشتری در آناتومی انسان کسب کند و کارش را دقیق‌تر انجام دهد. وقتی عواقب شدید باشند، افراد سریعتر یاد می‌گیرند. هر یک درد در فاصله زمانی زودتر رخ دهد، احتمال تکرار رفتار کمتر خواهد شد. اگر دوست دارید از عادتهای بد جلوگیری و رفتارهای ناسالم را حذف کنید، افزودن یک حزینه آنی به آن اقدام، یک راه عالی برای کاهش احتمال وقوع آن خواهد بود. ما عادتهای بد را تکرار می زیرا به نوعی در خدمت ما قرار می‌گیرند و به همین دلیل دل کندن از آنها دشوار می شود. بهترین روی کردی که برای غلبه بر این مشکل می شناسم زهور عواقبی تر که آن رفتار دارد. نباید بین یک اقدام و اواقب آن فاصله باشد. به محض اینکه اقداماتمان یک سرخوردگی و شکست آنی را به وجود بیاورند، آن رفتار شروع به تغییر خواهد کرد. اگر دیر کرد در پرداخت قبض جریمه به همراه داشته باشد، مشتریان آن را به موقع پرداخت خواهند کرد اگر نمره دانشجویان منوط به حضورشان در کلاس باشد در این کلاسها شرکت خواهند کرد برای اینکه از ظهور دردها و شکست های آنی جلوگیری کنیم دست به اقدامات زیادی خواهیم زد البته محدودیت‌هایی برای این موضوع وجود دارد اگر قرار است برای تغییر رفتار به تنبیه اتکا کنیم بنابراین، قدرت تنبیه باید با قدرت نسبی رفتاری که خواهان اصلاحش هستیم همخانی داشته باشد برای اینکه بهره افزایش یابد باید هزینه ناشی از اتلاف وقت بیشتر از هزینه اقدام کردن باشد برای سالم ماندن باید هزینه ناشی از تنبلی بالاتر از هزینه ورزش باشد جریمه شدن به خاطر استعمال دخانیات در رستوران یا جریمه به خاطر عدم تفکیک زباله میتواند تواند عواقبی را بر اقدام نادرستتان بیافزاید. رفتار فقط در شرایطی تغییر می کند که تنبیهتان به اندازه کافی دردناک باشد و به درستی اجرا شود. به طور کلی هر قدر یک نتیجه محسوستر، قطعیتر و دارای فوریت بیشتر باشد، احتمال اینکه بر رفتار فرد تاثیر بگذارد، بیشتر خواهد شد. از آنسو هر قدر نتیجه کار نامحسوستر، مبهمتر و دارای تأخیر بیشتر باشد از احتمال تحصیل گذاریان بر رفتار فرد کاسته خواهد شد. پیمان عادت اولین قانون کمربند ایمنی در یکم دسامبر 1984 در نیویورک تصویب شد. در آن دوران فقط 14 درصد از مردم آمریکا به صورت منظم و مداوم کمربند میبستند. اما قرار بود این قضیه تغییر کند طی پنج سال بیش از نیمی از های کشور قانون کمربند ایمنی داشتند امروز در 49 مورد از 50 ایالت آمریکا قانون بستن کمربند ایمنی اجرایی شده است و سرفاً بحث چارچوب قانونی نیست چون تعداد افرادی که کمربند ایمنی میبندند نیز به طرز قابل توجهی تغییر کرده است در سال دوزار شانزده بیش از هشتاد و هشت درصد از آمریکایی‌ها، هر بار که وارد ماشین میشدند کمربندشان را میبستند فقط پس از گذشت سی سال عادت میلیونها آدم کاملاً عوض شد قوانین و مقررات نمونه ای از نقش دولتها در تغییر عادت های ما از طریق ایجاد پیمان های اجتماعی هستند به عنوان یک جامعه به صورت جمعی توافق می کنیم که از قوانین معینی تبعیت کرده و سپس آنها را به صورت گروهی اجرا کنیم هر زمان که یک قانون جدید بر رفتار افراد تاثیر میگذارد قانون بستن کمربند منع مصرف دخانیات داخل رستوران بازیافت اجباری نمونه هایی از یک پیمان اجتماعی است که عادت های ما را شکل می دهد. گروه توافق می کنند که به شکل معینی عمل کنند و اگر با آنها همراهی نکنید تنبیه خواهید شد. همانطور که دولتها از قانون برای افزایش مسئولیت پذیری شهروندان بهره میگیرند، شما هم می توانید عادتی بسازید که حس مسئولیت پذیری را به خودتان بدهد. پیمان عادت، توافقی شفاهی یا کتبی است که تعهد شما به یک عادت ویژه و تنبیهی را که به واسطه عدم پیروی از آن حاصل می شود، بیان می کند. سپس یکی دو نفر را به عنوان شریک خود در این مسئولیت انتخاب می کنید تا آنها هم این پیمان را امضا کنند. برایان هریس، یک کارافرین اهل نشویل تنسی، اولین شخصی بود که این استراتژی را به بوته عمل گذاشت. خیلی از تولد پسر هریس نگذشته بود که متوجه شد دوست دارد چند کیلوگرم وزن کم کند. او یک پیمان عادت را بین خودش همسرش و مربی خصوصیاش نوشت. اولین نسخه آن این چنین بود. هدف شماره یک برایان برای سه ماهی اول سال 2017 این است که مجددا، آدات خوراک درست را از سر بگیرد تا حس و شمایل بهتری داشته باشد و بتواند به هدف طولانی مدت خود که وزن 90 کیلوگرم با ده درصد چربی بدن است دست پیدا کند. زیر این بیانیه هریس یک نقشه راه برای دستیابی به نتیجه ایدئال ترسیم کرده بود. فاز یک در اول، دوباره سراغ رژیم سفت و سخت کربوهیدرات پایین برو. فاز دو، در سماهی دوم، برنامه رهگیری سفت و سخت برای اناصر غذایی پرمصرف را شروع کن. فاز سه، در سماهی سوم، جزئیات رژیم غذایی و برنامه ورزشی را اصلاح کن و نگهدار. در نهایت فهرستی از عادتهای روزمره نوشت که می‌توانستند او را به هدفش برسانند مثلا همه غذاهایی که هر روز می‌خوری را یادداشت کن و هر روز آنها را وزن کن سپس برایان تنبیهاتی را که در صورت عدم پایبندی به این عادات اعمال می‌شد فهرست کرد اگر برایان این دو آیتم را انجام ندهد این تنبیه اجرایی خواهد شد باید در کل سماهی آتی هر روز کاری و هر یک شنبه صبح را لباس رسمی بپوشد منظور از لباس رسمی این است که خبری از شلوار جین، تی شرت، شرت یا شلوارک نیست همچنین اگر حتی یک روز فهرست غذاهایش را یادداشت نکند باید به جویی مربی‌اش دویست دلار بپردازد تا هر طور دوست داشت آن را هزینه کند در انتهای صفحه، هریس، همسر و مربیش پای این قرارداد را امضا کردند. واکنش اولیه من به چنین قراردادی این بود که بسیار رسمی و غیر ضروری به نظر می رسد. مخصوصاً اینکه زیر آن را امضا کردند. اما هریس مرا قانع کرد که امضای قرارداد بیانگر جدی گرفتن قضیه است. او گفت: هر زمان که این بخش را نادیده گرفتم، کم کم شل گرفتن و تنبلی شروع شد سه ماه بعد پس از رسیدن به اهداف سه ماهی اول هریس اهدافش را بررسی کرد. عواقع به عدم پایبندی نیز تشدید شدند. اگر به اهداف کربوهیدرات و پروتئین مد نظرش نمیرسید باید صد دلار به مربیش میداد. اگر خودش را وزن نمیکرد باید به همسرش پانصد دلار میداد. تا هر طور که صلاح دانست آن را خرج کند. شاید دردناکترین جریمه این بود که اگر استارتهای سرعتیش را فراموش می کرد، باید در تمامی روزهای کاری سماهاتی لباس رسمی و کلاه باشگاه آلاباما می پوشید. آلاباما رقیب تیم محبوب او یعنی آبرن بود. این استراتژی جواب داد. با توجه به اینکه که همسر و مربیش در این مسئولیت همراهش بودند و همچنین کارهای هر روز به شکل سریح در پیمان عادت قید شده بودند، هریس وزنش را کم کرد. برای اینکه عادتهای بد را تبدیل به یک عامل نارضایتی کنید، بهترین گزینه شما این است که همین الان عواقب بدشان را درک کنید. ایجاد یک پیمان عادت روی کردی سرراست. برای رسیدن به همین هدف است. حتی اگر دوست ندارید یک پیمان عادت را به شکل تمام و کمال توسعه دهید، همراهی یک فرد در این مسئولیت می تواند به نفعتان تمام شود. مارگارت چو که است، هر روز یک شوخی یا آهنگ می نویسد. او چالش یک آهنگ در روز را با دوستش دارد که به هر دوی آنها کمک می کند پای مسئولیتشان بمانند. زیرا آنها میدانند که مشاهده دیگران می تواند یک محرک قوی باشد وقتی میدانید که در آینده نزدیک با یک مشکل و هزینه مواجه میشوید احتمال دفع وقت یا تسلیم شدنتان کاهش مییابد اگر شما هم این روند را پی نگیرید احتمالاً به عنوان یک فرد تنبل یا غیر قابل اطمینان نگریسته میشوید ناگهان متوجه می شوید که نه فقط به وعده های داده شده به خودتان پایبند نمیمانید نمی مانید، بلکه نمی توانید وعده هایتان به دیگران را نیز حفظ کنید، حتی می توانید این پروسه را به صورت ناخودآگاه و خودکار انجام دهید. توماس فرانک، کارافرین اهل بولدر کلورادو، هر روز صبح ساعت پنج و پنج و پنج دقیقه از خواب بیدار می شود. اگر بیدار نشود، توییت آماده ای دارد که از قبل نوشته شده و به صورت خودکار ارسال می شود. ساعت شش و ده دقیقه است و بیدار نشدم چون تنبل هستم. به این توییت پاسخ بگویید تا پنج دلار به پیپالتان واریز شود. سقف پنج دلار. البته با این فرض که آلارمم درست کار کرده باشد. ما همواره در تلاش هستیم تا بهترین خودمان را به دنیا نشان دهیم موهایمان را شانه و دندانمان را مسواک میزنیم و شیک لباس میپوشیم چون میدانیم که این عادتها باعث میشوند واکنش مثبتی به شخصیت خودمان دریافت کنیم. دوست داریم نمرات خوبی بگیریم و از دانشگاههای برتر فارغ و تحصیل شویم تا کارفرماهای احتمالی و دوستان و اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار دهیم به عقاید افراد پیرامونمان اهمیت می دهیم. چون اگر دیگران ما را دوست داشته باشند به نفعمان تمام می شود. دقیقا به همین دلیل است که همراهی افراد در مسئولیت پذیری و امضای یک پیمان عادت نیز میتواند به ما کمک کند. خلاصه فصل. عکس قانون چهارم تغییر رفتار میگوید آن را عامل نارضایتی کنید در صورتی که یک عادت بد دردناک یا عامل نارضایتی باشد تمایل کمتری به تکرار آن داریم همراهی افراد در یک مسئولیت می تواند باعث شود که در صورت بیتفاوتی و عدم اجرای تعهدات با عواقب آنی مواجه شوید عمیقا به تفکر دیگران راجع به خودمان اهمیت می دهیم و دوست نداریم ما را دست کم بگیرند یک پیمان عادت می تواند برای افزودن هزینه های اجتماعی به هر رفتار استفاده شود این قرارداد هزینه های تخطی از وعده هایتان را دردناک می کند و عمومیت می بخشد همین که بدانید دیگران شما را می بینند نقش یک محرک قوی را برایتان دارد نحوه ایجاد یک عادت خوب قانون اول آن را شفاف و آشکار کنید یک یک کارت امتیازی عادتها را پر کنید عادت‌های کنونی خود را یادداشت کنید تا نسبت به آنها آگاه شوید. دوی یک از مقاصد اجرایی بهره بگیرید. من رفتار جای خالی را در زمان جای خالی و در موقعیت مکانی جای خالی انجام خواهم داد. سه یک از زنجیر سازی عادت استفاده کنید. پس از عادت فعلی آن عادت جدید را انجام خواهم داد. چهار یک، محیط خود را طراحی کنید. سرنخ‌های عادت خوب را در معرض دید بگذارید. قانون دوم: آن را جذاب کنید. یکی دو از جمبندی خواسته‌ها بهره بگیرید. اقدامی که دوست دارید را با اقدامی که باید انجام دهید جفت کنید. دوی دو به فرهنگی به پیوندید که رفتار مطلوب شما به مسابه رفتار معمول آنها باشد. سه دو یک رسم انگیزشی بسازید. کاری که از آن لذت میبرید را بلا فاصله پیش از یک عادت دشوار، انجام دهید قانون سوم آن را ساده کنید یک سه استکاک را کاهش دهید تعداد گام‌هایی که میان شما و عادات خوبتان قرار دارند را کم کنید دوی سه محیط را آماده کنید محیط خود را آماده کنید تا تصمیمات آتی شما ساده تر شود سهی سه بر لحظه تعیین کننده مسلط شوید انتخاب های کوچکی را که تأثیرات قابل توجه به همراه دارند بهینه کنید چهار سه از قانون دو دقیقهی استفاده کنید مقیاس هایتان را فشرده تر کنید تا بتوانید آنها را طی دو دقیقه یا کمتر انجام دهید. 5سه عادت را به ناخداگاه منتقل کنید. روی سرمایه گذاری و تصمیمات یکباره حساب باز کنید تا رفتار آینده شما تضمین شود. قانون چهاررمم آن را رضایت بخش کنید. چهار از تقویت استفاده کنید. هر زمان که عادتتان را تکمیل کردید، به خودتان یک پاداش فوری بدهید. دوی چهار هیچ کاری نکردن را برای خودتان لذت بخش کنید. وقتی در حال اجتناب از یک عادت بد هستید، راهی برای مشاهده عواید این موضوع بیابید. سه چهار از ردیاب عادت بهره بگیرید. مجموعه عادتهایتان را تحت نظر بگیرید و زنجیره عادت را نشکنید. چهار چهار هیچگاه دو بار متوالی یک عادت را فراموش نکنید. وقتی اجرای یک عادت را فراموش کردید، مطمئن شوید که هرچه سریعتر به مسیر اصلی خود برمیگردید. نحوه شکستن یک عادت بد قانون اول آن را مخفی کنید پنج یک میزان قرار گرفتن خود در معرض آن را کاهش دهید سرنخ‌های عادت بد را از محیط خود حذف کنید قانون دوم آن را غیر جذاب کنید چهار دو ذهنیت خود را تغییر دهید. عواید اجتناب از عادت های بدتان را برجسته کنید. قانون سوم آن را دشوار کنید. شش سه، استکاک را افزایش دهید. تعداد گام های میان شما و عادت های بدتان را بیشتر کنید. هفته سه از ابزار تعهد بهره بگیرید. انتخاب‌های آتیتان را به مواردی محدود کنید که به نفعتان هستند. قانون چهار روم آن را عامل نارضایتی کنید. پنج چهار یک همراه برای اجرای مسئولیت خود بیابید. از یک نفر بخواهید که رفتارتان را زیر نظر بگیرد شش چهار یک پیمان عادت بسازید عواقب عادات بدتان را دردناک کنید و عمومیت ببخشید میتوانید یک نسخه کامل و قابل پرینت از این جداول را از سایت نشر نوین به آدرس نشر نوین صفحه مربوط به کتاب های اتمی دان کنید های پیش رفته. چگونه از کم و بیش خوب به واقعاً عالی تبدیل شوید هجده حقیقت استعداد چه وقت جنها مهمند و چه وقت نیستند؟ احتمالا با مایکل فلپس آشنا هستید. کسی که خیلی ها او را به عنوان یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ میشناسند. فیلپس مدال های المپیک بیشتری را نه فقط از سایر شناگران بلکه بیش از سایر ورزشکاران المپیکی در سایر رشته ها برده است. افراد کمتری هستند که هیشام شام را میشناسند اما، او هم به نوبه خود یک ورزشکار عالی بود. الگروج یک دونده مراکشی بود که دو مدال طلای المپیک دارد و یکی از بهترین دونده های نیمه استقامت تمام دوران است. سالها رکورد 2500 و 2000 متر دست او بود. در بازی های المپیک 2004 آتن یونان او مدال طلای 1500 متر و 5000 متر را از آن خود کرد. این دو ورزشکار از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از تفاوتهای اولیه این است که یکی در خشکی و دیگری در آب رقابت می کند. اما نکته مشهود تر تفاوت قدی زیاد میان آنها است. الگروج حدود 175 سانتیمتر قد دارد و قد فلبس حدود 190 سانتیمتر است. علا رقم تفاوت پانزده سانتیمتری در قد، این دو مرد از یک نظر کاملا یکسان هستند. مایکل فیلپس و هیشام الگروج اندازه شلوار یکسانی دارند. این امر چگونه امکان دارد؟ فیلپس دارای پاهای کوتاه نسبت به قدش و نیمتنه قویست که برای شنا کردن عالی است. الگروج دارای پاهای کاملا بلند و بالاتنه کوتاهتر است که یک اسکلت قوی برای دویدن در مسافت‌های طولانی محسوب می‌شود. حال فرض کنید که این دو ورزشکار کلاس جهانی جایشان را با یکدیگر عوض می‌کردند. با توجه به اینکه هر دو خصایص ورزشکاری عالی داشتند، آیا مایکل فیلپس می‌توانست با تمرین زیاد در دوی مسافت بالا به سطح المپیک برسد؟ احتمالش کم است. در زمان اوج آمادگی، فلپس 88 کیلوگرم وزن داشت که چهل درصد سنگین از الگروج بود. زیرا او با وزن شست کیلوگرم به رقابت می پرداخت. دونده های قد بلندتر وزن بالاتری دارند و هر پانصد گرم وزن اضافی در دوی مسافت بالا می مشکل ساز باشد. فلپس در صورت تعویز رشته، از همان ابتدا نمی توانست در رقابت سطح بالا حضور پیدا کند. به همین ترتیب شاید الگروج یکی از بهترین دوندگان تاریخ باشد، اما جای تردید دارد که بتواند به عنوان یک شناگر حتی به المپیک راه پیدا کند. از سال 1976، متوسط قد برندگان مدال طلای المپیک در دوی متر مردان، حدود 175 سانتی متر بوده است. در مقام مقایسه متوسط قد برندگان مدال طلای المپیک در رشته شنای آزاد 100 متر به 190 سانتی متر میرسد. شناگران دارای قد بلند و کمر و بازوان قوی هستند که برای کنار زدن آب مناسب است. الگروج پیش از اینکه پایش به استخر برسد به خاطر فیزیک بدنیش از دیگران عقب میفتاد. رمز سازی احتمال موفقیتتان این است که حوزه درستی را برای رقابت انتخاب کنید. این امر همچون ورزش و کسب و کار در حوزه تغییر عادت نیز صدق می‌کند. وقتی عادتها هم همراستا با تمایلات و توانایی‌های طبیعی شما باشند، اجرای آنها ساده‌تر است و رضایت بیشتری به همراه دارد. همچون مایکل فلپس در استخر و هیشام الگروج در پیست باید بازی خاصی را انتخاب کنید که احتمال موفقیتتان در آن زیاد باشد برای اینکه این, این استراتژی را بپذیرید باید این حقیقت ساده را قبول کنید که انسان ها با قابلیت های مختلف زاده شدند. برخی افراد دوست ندارند درباره این حقیقت صحبت کنند ظاهرا ژن شما ثابتند و بحث درباره چیزهایی که تحت کنترل شما نیستند خیلی جالب نیست. همچنین عباراتی همچون جبرگرایی بیولوژیکی این گونه القا کنند که سرنوشت برخی افراد خاص به موفقیت گره خورده و برخی دیگر محتوم به شکست هستند. اما این یک دیدگاه کوتاه‌بینانه درباره تاثیر تأثیر بر رفتار است. نقطه قوت ژنتیک نقطه ضعف آن هم هست. جنها نمی توانند به سادگی تغییر داده شوند و این ترتیب می توانند در برخی موقعیت مطلوب مزیت زیادی را برایتان به وجود آورند اما در موقعیت نامطلوب کاملا به ضررتان تمام می شوند اگر دوست دارید در سبد بسکتبال اسلم دانک بزنید قد 210 سانتی متری به کارتان می آید اما اگر بخواهید حرکات ژیمناستیک بزنید، این قد 210 سانتی ده سانتیمتری مانع بزرگی برای شما محسوب می شود. محیط ما میزان تناسب جنها و کاربرد استعدادهای طبیعی ما را تعیین می کند. وقتی محیط تغییر می کند، ویژگی های تعیین کننده موفقیت نیز عوض می شوند. این امر نه فقط برای ویژگی های فیزیکی، بلکه برای خصایص ذهنی نیز صدق می کند. اگر از من درباره عادتها و رفتار انسانی بپرسید، باهوش هستم و اطلاعات زیادی دارم. اما در زمینه گلدوزی احتراق موشک یا کرتهای گیتار اینگونه نیستم. رقابت بستگی زیادی به چارچوب دارد. افرادی که در صدر هر حوزه ی رقابتی قرار دارند نه فقط به خوبی تعلیم دیدهاند بلکه تناسب خوبی با وظیفهشان دارند به همین دلیل است که اگر می‌خواهید واقعا موفق شوید باید کانون تمرکزتان را به شکل صحیح انتخاب کنید مخلص کلام ژنها سرنوشت شما را تعیین نمی‌کنند آنها حوزه های فرصت طلبی شما را تعیین می‌کنند همانطور که گابور میت پزشک اشاره کرده است ژنها میتوانند زمینه چینی کنند اما از پیش تعیین کننده نیستند. زمینه هایی که از نظر ژنتیک برای موفقیت شما مهیا هستند همان حوزه هایی هستند که احتمالاً عادات رضایت بخش بیشتری در آنها داشته باشید. کلید کار اینجاست تلاشتان به سمت حوزه هایی معطوف شود. که شما را هیجان زده می کنند و با مهارتهای طبیعیتان همخانی دارند تا بدین ترتیب جاه و توانمندیهایتان در یک راستا قرار بگیرد. پرسش بدیهی این است. چگونه متوجه شوم احتمال لازم برای موفقیت من وجود دارد؟ چگونه فرصتها و عادتهایی را که برایم مناسبند شناسایی کنم؟ اولین جایی که باید به دنبال پاسخ باشیم شخصیت خودمان و شناختان است. چگونه شخصیت شما بر عادتهایتان تأثیر می‌گذارد؟ ژنهای شما در پس همه عاداتتان نقش ایفا می‌کنند. همچنین در پس هر رفتاری حضور دارند. مشاهده شده است که ژنها بر همه چیز از تعداد ساعاتی که صرف تماشای تلویزیون میکنید تا احتمال ازدواج یا طلاقتان و همچنین گرایشتان به مصرف مداوم مواد مخدر الکل یا نیکوتین تاثیر میگذارند یک مؤلفه ژنتیک قدرتمند درباره میزان سرسپردگی یا توقیان شما در مواجهه با قدرتمندان میزان آسیب پذیری یا مقاومت شما در برابر رخدات های استرسزا، میزان کنشگرایی یا واکنشگرایی ذاتی و حتی میزان جذابیت یا کسل کننده بودن تجربیات حسی همچون حضور در کنسرت وجود دارد. همانطور که رابرت پلومین دانشمند ژنتیک رفتاری در کینگز کالج لندن به من گفت، همکنون به جایی رسیده ایم که دیگر حضور های ژنتیک در خصایصمان را مورد آزمایش قرار نمیدهیم، زیرا عملا نمی توانیم هیچ خصیصه ای را بیابیم که تحت تأثیر ژنهایمان قرار نگیرد. مجموعه این خصایص ژنتیک در کنار هم شما را به سمت یک شخصیت ویژه هدایت می کنند. شخصیت شما مجموعه ای از ویژگی هاست که در موقعیت های مختلف ثابتند. اثبات شده ترین تحلیل علمی درباره خصایص شخصیتی تحت عنوان پنج عامل اصلی شناخته می شود که پنج طیف رفتاری مختلف را مطرح می کند یک استقبال از تجربیات از کنجکاوی و ابتکار در یک سمت طیف تا احتیاط و محافظه‌کاری در آن سو دو وزیف شناسی و باوجدانی از نظاممندی و تاثیرگذاری تا سادگی و خودجوشی. سه، برونگرایی. از اجتماعی بودن و تکاپو داشتن تا درونگرایی و کمحرفی. احتمالا تقابل این دو را تحت عنوان برونگرا در مقابل درونگرا شنیده اید. چهار، سازگاری. از سمیمیت و مهربانی تا سرد بودن و ستیز جویی. پنج صبات احساسی از استراب و حساسیت تا اطمینان خونسردی و صبات تمامی این پنج خصیصه دارای بنیانهای بیولوژیکی هستند. مثلا برونگرایی را میتوان از زمان تولد رهگیری کرد. اگر دانشمندان یک صدای بلند را در بخش پرستاری پخش کنند، برخی بچه ها به سمت آن جلب میشوند، و برخی از آن اجتناب می کنند. وقتی دانشمندان این کودکان را در طول زندگیشان تحت نظر گرفتند، متوجه شدند، بچه هایی که به سمت صدا جذب شده بودند، بیش از سایرین به انسانی برونگرا تبدیل شدند. آنهایی که از صدا گریزان بودند، بیشتر درونگرا شدند. افرادی که سازگاری بالایی دارند، مهربان و دلسوز و گرم هستند. آنها همچنین به صورت طبیعی دارای اکسیتوسین بالایی هستند، هرمونی که نقش مهمی را در برقراری پیوند اجتماعی ایفا می کند، حس اطمینان را افزایش می دهد و می تواند همچون یک ضد افزار طبیعی عمل کند. می توانید به سادگی تصور کنید که افراد دارای اکسیتوسین بیشتر، بیش از سایرین عادتهایی چون نگارش یا داشتای تشکر یا سازماندهی رخدادهای اجتماعی را توسعه می دهند. به عنوان نمونه سوم، صبات شخصیتی را در نظر بگیرید که افراد گوناگون به میزان متفاوتی از این خصیصه برخوردارند، افرادی که صبات شخصیتی پایینی دارند، مستربترند و بیش از دیگران احساس نگرانی می کنند، این خصیصه را به حساسیت بیش از حد در آمیگدال نسبت دادند، آمیگدال یکی از بخش‌های مغز است که مسئولیت تشخیص تهدیدات را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، افرادی که حساسیت بیشتری به نشانه‌های منفی محیطشان دارند، احتمالاً نمره پایینتری در ثبات شخصیتی دریافت می‌کنند. عادت‌های ما صرفاً بر اساس شخصیتمان تعیین نمی‌شوند، بلکه بدون تردید ژن‌هایمان نیز ما را به جهت خاصی هدایت می‌کنند. ترجیحاتی که در عمق جان ما ریشه دوانده کاری می اجرای برخی رفتارهای معین برای برخی افراد ساده تر باشد. لزومی ندارد به خاطر این تفاوت ها شرمسار باشید یا حس عذاب وجدان بگیرید، بلکه باید با آنها کنار بیایید. مثلا فردی که نمره پایینتری را در وظیفه شناسی کسب می کند ذاتا نظم و ترتیب کمتری دارد و باید بیشتر روی طراحی محیط تلاش کند تا بتواند به عادتهای خوبش پایبند بماند برای آن دست از مخاطبانمان که شلخته و فراموش کارند بگویم که طراحی محیط یکی از استراتژی‌های مطرح شده این کتاب در فصول شش و دوازده است برداشت نهایی ما این است که باید های متناسب با شخصیتتان بسازید. امکان دارد افراد دوست داشته باشند اندومشان شبیه بدنساز ها شود، اما اگر سخر نوردی یا دوچرخ سواری یا قایقرانی را ترجیح می دهید، خود را پیرامون علایقتان شکل دهید. اگر دوستتان از یک رژیم کم کربوهیدرات پیروی می کند، اما متوجه شده اید که رژیم کم چربی برای شما جواب میدهد، پس سراغ مورد متناسب با خودتان بروید. اگر دوست دارید بیشتر مطالعه کنید و رمان های عاشقانه پرسوز و گداز را به کتابهای های غیر تخیلی ترجیح می دهید از این سلیقهتان احساس شرمندگی نکنید. آنچه را بخوانید که دوست دارید لزومی ندارد عادت را بسازید که دیگران به شما تحمیل می کنند. آن عادتی که بیشتر با شما تناسب دارد را انتخاب کنید، نه عادتی که نزد جامعه محبوب تر است. یک نسخه از هر عادت وجود دارد که می تواند لذت و رضایتمندی را برایتان به ارمغان آورد. آن را بیابید. اگر قرار است به عادتی پایبند بمانید، آن عادت باید لذت بخش باشد. این ایده محوری است که به عنوان زیربنای قانون چهارم مطرح کردیم. اصلاح ها بر اساس شخصیتتان یک شروع خوب است اما نباید داستان به همین جا ختم شود بیایید توجهمان را به سمت یافتن و طراحی موقعیت‌هایی معطوف کنیم که به صورت ذاتی در آن ها برتری دارید چگونه آن حوزه‌ای که احتمال موفقیتتان در آن بیشتر است را بیابید اگر بتوانید حوزه‌ای که احتمال موفقیتتان در آن بیشتر است را بیابید، گام بزرگی را برای حفظ انگیزه و احساس موفقیت برداشته اید. از نظر تئوری، می توانید تقریبا از هر چیزی لذت ببرید. در عمل، احتمالا از چیزهایی لذت میبرید که برای شما به سادگی حاصل می شوند. افرادی که در یک حوزه بهخصوص استعداد دارند شایستگی بیشتری در آن وظیفه خواهند داشت و به خاطر انجام کار خوبشان مورد تمجید قرار میگیرند. آنها انرژی خود را از دست نمی دهند زیرا پیشرفت می کنند و پاداشهایی همچون حقوق بیشتر و فرصت های بهتر را دریافت می کنند که همین امر نه فقط خوشحالترشان می کند، بلکه موجب تحریکشان برای ایجاد کارهای با کیفیت تر میشود. این یک چرخه پیشرفت است. اگر عادت خوب را انتخاب کنید پیشرفت آسان است. اما اگر عادت نادرست را برگزینید زندگیتان را دچار مشکل خواهید کرد. چگونه عادت درست را انتخاب کنید؟ اولین گام همان نکته است که در قانون سوم مطرح کردیم. آن را ساده کنید. در بسیاری از نمونه ها وقتی افراد عادت نادرست را انتخاب می کنند صرفاً به این خاطر است که عادت بسیار دشواری را برگزیدند. وقتی یک عادت ساده است احتمال موفقیتتان در آن بیشتر می شود. وقتی موفق هستید حس رضایت بیشتری دارید اما یک سطح دیگر هم هست که باید در نظر بگیرید. اگر خواهان پیشرفت و بهبود طولانی مدت هستید، هر حوزه می میتواند چالش برانگیز شود. در یک مقطع باید مطمئن شوید که حوزه صحیحی را با توجه به مجموعه مهارت‌هایتان برگزیده اید. چگونه این موضوع را متوجه شوید؟ رایجترین راهکار آزمون و خطا است. البته این استراتژی یک مشکل هم دارد. زندگی کوتاه است. شما وقت ندارید که بخواهید همه حرفه ها را امتحان کنید با همه مجرد های واجد شرایط قرار بگذارید یا همه آلات موسیقی را بنوازید خوشبختانه یک راه مؤثر برای مدیریت این معما وجود دارد و آن را تحت عنوان بدبستان مکاشفه بهره برداری میشناسند در ابتدای یک فعالیت جدید باید یک دوره مکاشفه وجود داشته باشد در روابط، این دوره همان قرار گذاشتن است. در دانشگاه این دوره را علوم انسانی مینامند. در تجارت این دوره را تست جداسازی سازی می مینامند. هدف این است که مسئولیت های مختلف آزموده شوند. درباره گستره ای از ایده ها تحقیق شده و یک تور بزرگ پهن شود. پس از این دوره مکاشفه اولیه باید تمرکزتان را به سمت بهترین راهکاری که یافته اید انتقال دهید. اما باز هم هر از چندگاهی چیزهای متفاوت را امتحان کنید. توازن صحیح به موقعیت کنونیتان بستگی دارد که در حال برنده شدن هستید یا باختن. اگر همکنون در حال پیروزی هستید، به بهرهبرداری ادامه دهید. اگر دارید میبازید، باید به مکاشفه خود ادامه دهید. موثرترین راهکار در طولانی مدت، کار روی استراتژی منتخب است که در هشتاد، الا 90 درصد مواقع بهترین نتایج را تحویل دهد و در آن ده الا 20 درصد زمان باقی نیز به مکاشفه خود ادامه دهیم. گوگل در یک رویکرد معروف از کارکنانش خواست 80 درصد از زمان کاری خود را روی مسئولیت رسمیشان کار کنند و 20 درصد دیگر را روی پروژههای منتخبشان وقت بگذارند که همین رویکرد موجب خلق محصولات محبوبی همچون ادوردز و جیمیل شده است. همچنین رویکرد بهینه شما به میزان زمانی که در اختیار دارید بستگی دارد. اگر زمان زیادی در اختیار دارید، مثل فردی که در ابتدای حرفه خودش قرار دارد، بهتر است که بیشتر مکاشفه کنید تا حوزه صحیح را بیابید و هنوز زمان کافی در اختیارتان هست تا از این انتخاب بهره برداری کنید. اگر تحت فشار زمانی هستید، مثلا فردی که به موعد مقرر تحویل پروژه نزدیک شده است، باید بهترین راهکاری که تاکنون پیدا کرده اید را اجرایی کنید تا نتیجه حاصل شود. وقتی گزینه‌های مختلفی را کشف کردید، یک مجموعه پرسش است که باید دائما از خودتان بپرسید تا فهرست عادتها و حوزه هایی که بیشتر موجب رضایتتان می‌شوند را کوتاه‌تر کنید. کدام موارد برای من لذت بخش و برای دیگران کار به حساب می آیند. نشانه این که فلان وظیفه برای شما ساخته شده این نیست که عاشق آن وظیفه باشید، بلکه باید آن وظیفه را ساده از دیگران انجام دهید و حین اجرایش کمتر عذاب بکشید. چه زمانی از یک کار لذت می برید؟ در حالی که دیگران راجبان قرولند می کنند؟ آن کاری که به شما کمتر از دیگران صدمه می برای شما ساخته شده است. کدام کار باعث می شود زمان از دستم خارج شود؟ یک وضعیت ذهنی وجود دارد که وقتی روی یک وظیفه خاص متمرکز می شوید، سایر های دنیا از نظرتان محو می شوند و زمان از دستتان در می روید. این آمیزه رضایت و بازده بالا همان حالتی است که ورزشکاران و هنرمندان در شرایطی که روی فرم هستند تجربه می کنند. تقریبا محال است که در چنین شرایطی قرار بگیرید و آن وظیفه حداقل تا حدودی موجب جلب رضایت شما نشود در کدام بخش می توانم بازده بیشتری نسبت به یک شخص معمولی داشته باشم مودم خودمان را با افراد پیرامونمان مقایسه میکنیم و اگر این مقایسه به نفع ما تمام شود، حس رضایت بیشتری خواهیم داشت. وقتی نگارش در jamesclear.com را آغاز کردم، فهرست مشترکان ایمیلی هم خیلی سریع رشد کرد. مطمئن نبودم که عمل کردم خوب باشد، اما متوجه شدم که خیلی سریتر از برخی همکارانم نتیجه میگیرم و همین امر انگیزه لازم برای ادامه نویسندگی را به من داد. چه چیزهایی به صورت طبیعی به من الهام می شوند؟ برای یک لحظه، هرچه در موردش فکر کرده اید را نادیده بگیرید، آنچه جامعه به شما گفته را نادیده بگیرید. آنچه دیگران از شما انتظار دارند را نادیده بگیرید، به درون خودتان بنگرید و بپرسید چه چیزی به صورت طبیعی به من الهام می شود؟ چه زمانی حس زنده بودن دارم؟ چه زمانی خود واقعیم را احساس می کنم؟ بدون قضاوت درونی و بدون اینکه به فکر راضی کردن مردم باشید، بدون گمان زنی یا انتقاد شخصی، هر زمان که حس صحیح و کامل بودن داشتید، احتمالا در مسیر صحیح قرار دارید صادقانه بگویم که بخشی از این پروسه صرفا شانسی است مایکل فلابس و هیشام خوش خوششانس بودند که با مجموعه توانایی های نادری متولد شدند که ارزش بالایی نزد جامعه دارند و در محیط ایدئالی برای بارورسازی آن توامندی ها قرار گرفتند همه ما به مدت محدودی در این سیاره هستیم و از میان ما آنهایی موفق میشوند که نه فقط سخت کوشند بلکه بخت بهتری دارند و در معرض فرصتهایی هایی قرار میگیرند که به نفعشان است اما اگر نخواهید همه چیز را به دست بخت و اقبال بسپارید چه باید کرد اگر نمیتوانید حوزه ای را بیابید که همه احتمالات موفقیت به نفعتان باشد آن حوزه را بسازید اسکات آدامز انیماتور شخصیت دیلبرت میگوید همه افراد حداقل چند حوزه دارند که می توانند با مقداری تلاش در آنها در میان 25 درصد برتر قرار بگیرند مثلا خودم رسم و نقاشی از بسیاری از افراد بهتر است اما به سختی یک هنرمند محسوب می شوم با اینکه از خیلی از افراد با مزه ترم اصلا از یک استنداب کمدین متوسط که هیچگاه به جایگاه بالایی نمی رسد با مزه تر نیستم. نکته جادویی من در اشتراک میان این ویژگی است. افراد اندکی می توانند تو امان خوب بکشند و جوک بنویسند. این ترکیب دو آیتم است که کار من را نادر کرده است. وقتی این موضوع را به پیش زمینه کاری من بیافزایید، می بینید ناگهان به جایگاهی رسیدم که رویای بسیاری از انیماتورهاست هاست. وقتی نمی توانید با بهتر بودن برنده شوید، باید از طریق متفاوت بودن ببرید. با ترکیب مهارتهایتان میزان رقابت را کاهش می دهید و همین امر شما را برجسته تر می کند. می از طریق بازنویسی قوانین رایج نیاز به برتری ژنتیکی یا سالها تمرین را از بین ببرید. یک بازیکن خوب به سختی تلاش می کند تا در بازی که دیگران حضور دارند برنده شود. اما یک بازیکن عالی بازی جدیدی را می سازد که همراستا با نقاط قوتش است و نقاط ضعفش نیز در آن جایی ندارند. در دانشگاه رشته خودم یعنی بیومکانیک را طراحی کردم که ترکیبی از فیزیک، شیمی، زیست شناسی و آناتومی است. آنقدر باهوش نبودم که بتوانم در میان شخصیت‌های برتر رشته فیزیک یا زیست شناسی قرار بگیرم. بنابراین بازی خودم را ساختم. از آنجایی که این بازی متناسب با من بود، فقط در کلاس‌هایی شرکت می‌کردم که به آنها علاقه داشتم. درس خواندن دیگر چندان برایم عذاب نبود همچنین دیگر از اینکه خودم را با دیگران مقایسه کنم خلاص شده بودم به هر حال هیچ فرد دیگری نبود که همین ترکیب از کلاسها را با هم برداشته باشد پس چگونه می مرا با آنها مقایسه کرد؟ کسب تخصص یک رویکرد قدرتمند برای غلبه بر اتفاقات ناشی از ژنتیک بد است هرقدر بیشتر در یک مهارت ویژه مسلط شوید عرصه رقابت برای دیگران تنگتر می شود. بسیاری از بدنسازها از یک مچنداز متوسط قوی ترند، اما حتی یک بدنساز قول هم احتمالاً در مچندازی به آنها میبازد. زیرا آن فرد توانایی مخصوصی را در این رقابت کسب کرده است. حتی اگر به صورت ذاتی دارای استعداد بالایی نباشید، غالباً می توانید، به بهترین فرد در یک حوزه و دسته بسیار تخصصی تبدیل شوید. جوشیدن در آب سیب زمینی را نرم و تخم مرغ را سفت می کند. نمی توانید کنترلی روی ماهیت سیب زمینی یا تخم مرغ بودنتان داشته باشید اما می توانید در بازی خاصی شرکت کنید که آن نرم یا سفت بودن به کارتان بیاید. اگر نمیتوانید محیط مطلوبی را برای خودتان بیابید، میتوانید موقعیت را از جایی که احتمالات علیه شماست به جایگاهی که شرایط به نفعتان است تغییر دهید. چگونه بیشترین بازده را از ژن‌هایتان دریافت کنید؟ ژن‌های ما به گونه‌ای نیستند که نیاز به کوشی را از بین ببرند. آنها شفاف سازی می کنند. آنها به ما میگویند باید در این حوزه ها تلاش کنیم. وقتی نقاط قوتمان را متوجه شدیم، دیگر میدانیم باید زمان و انرژی خود را در کجا صرف کنیم. میدانیم که باید به دنبال کدام فرصت ها بگردیم و باید از کدام چالش ها اجتناب کنیم. هرقدر ماهیتمان را به شکل بهتری درک کنیم استراتژی ما بهتر خواهد شد. تفاوت‌های بیولوژیک اهمیت دارند. با این حال، بهتر است که روی سازی پتانسیل خودتان تمرکز کنید تا اینکه به مقایسه خودتان با دیگران بپردازید. این حقیقت که هر انسان در هر توانمندی به خصوص دارای محدودیت‌ها و سقف مشخصی است، دلیل نمی‌شود که برای رسیدن به سقف ها تلاش نکنید. افراد آنقدر به این محدودیت‌ها و سقف‌ها نگرند، و اسیرشان میشوند که به ندرت تلاش لازم برای نزدیک شدن به آنها را انجام میدهند همچنین اگر تلاش نکنید ژنها به تنهایی نمیتوانند شما را به موفقیت برسانند بله امکان دارد آن مربی باشگاه دارای ژنهای بهتری از شما باشد اما باید به اندازه او تمرین کنید تا بتوانید درباره ژنتیک بهتر یا بدتر اظهار نظر کنید تا زمانی که به اندازه آدم‌های مورد ستایشتان تلاش نکردید هیچ وقت نمی‌توانید موفقیتشان را به شانس و ژنتیک ارتباط دهید مخلص کلام این که یکی از بهترین راهها برای حفظ رضایتمندی از آدتها در طولانی مدت انتخاب رفتارهایی است که بیشترین همخانی را با مهارت‌ها و شخصیت شما دارند سخت روی مسائلی تلاش کنید که به سادگی حاصل میشوند خلاصه فصل رمز سازی احتمال موفقیتتان این است که حوزه صحیح را برای رقابت برگزینید عادت صحیح را انتخاب کنید تا پیشرفت ساده شود عادت نادرست را انتخاب کنید تا زندگی برایتان سخت شود ژنها نمی توانند به سادگی عوض شوند. یعنی در موقعیت مطلوب برتری قدرتمندانه ای را برایتان ایجاد می کنند و در موقعیت های نامطلوب نیز شما را شدیددا عقب میاندازند. اگر عادتها با توانمندی های طبیعیتان همراستا باشند صدهتر می شوند. عادتهایی را انتخاب کنید، که بیشترین تناسب را با شما دارند در بازی هایی شرکت کنید که همراستا با نقاط قوتتان هستند اگر نمی توانید یک حوزه مطلوب را برای خودتان بیابید آن را بسازید جنها نیاز به سخت کوشی را از بین نمیبرند. آنها شفاف سازی می کنند آنها به ما میگویند باید در این حوزه ها تلاش کنید ده قانون طلایی چگونه در زندگی و کار با انگیزه بمانیم در سال 1955 دیزنی لند به تازگی در آنهیم کالیفرنیا افتتاح شده بود که یک پسر بچه 10 ساله وارد آن شد و تقاضای شغل کرد. آن زمان قوانین نیروی کار سختگیرانه نبودند و پسرک توانست شغل فروش کتاب های به قیمت هر یک نیم دلار را به دست بیاورد. طی یک سال او به بخش تردستی دیزنی منتقل شد جایی که توانست ترفندهایی را از کارکنان موسنتر بیاموزد. او شوخیهایی را میازمود و روتینهای ساده ای را برای بازدید اجرا می کرد. به زودی متوجه شد که نه اجرای تردستی بلکه به طور کلی هنر اجرا را دوست دارد. او در چشمنداز آینده خود دوست داشت یک کمدین شود. با شروع سالهای نوجوانی او اجرا در کلابهای کوچک پیرامون آنجلس را آغاز کرد. جمعیت اندکی می و نمایش هایش هم کوتاه بودند. به ندرت میشد که بیش از پنج دقیقه روی صحنه بماند. اکثر افراد حاضر در جمعیت آنقدر مشغول نوشیدن یا صحبت با دوستانشان بودند که توجه چندانی به او نمی کردند. یک شب علنن استنداب خود را در یک سالن خالی و بدون حضور افراد انجام داد. کار باشکوهی نبود اما بدون شک داشت بهتر می شد. اولین استنداب های او فقط یکی دو دقیقه طول می کشیدند. در دبیرستان متن او گسترش یافت و شامل یک نمایش پنج ای شد و چند سال بعد شوهای ده ای داشت. در نوزده سالگی شوی هفتگی به مدت 20 دقیقه داشت. مجبور می شد که سه عدد شعر بخواند تا بتواند زمان 20 دقیقه را پر کند. اما مهارتهایش کماکان پیشرفت رفت می کردند. او یک دهه دیگر را صرف آزمودن، سبک سنگین کردن و اجرا کرد. شغلی را به عنوان نویسنده تلویزیونی پذیرفت و به تدریج توانست در تاکشوها یعنی نمایش های گفت و شنودی، ظاهر شود. در عواست دهه هفتاد توانست بود خودش را به جایی برساند که مهمان همیشگی تونایت شو و ستردی نایت لایف شود. در نهایت و پس از نزدیک به پانزده سال کار این مرد جوان توانست به شهرت برسد. او طی 63 روز در 60 شهر مختلف برنامه گذاشت. سپس تور 80 روزه‌ای در 72 شهر دیگر داشت. بعد 85 شهر در 90 روز در یکی از برنامه‌های او در اوهایو 18695 نفر شرکت کردند. هزار بلیط دیگر برای برنامه 3 روزه او در نیویورک فروخته شدند. او به صدر ژانر خودش پرتاب شد و به یکی از موفقترین کمدین های اش تبدیل شد. نام او استیو مارتین بود. داستان مارتین بود جالبی از پایبندی طولانی مدت به عادات را نشان میدهد. کمدی برای خجالتی ها نیست. تصور موقعیتی که ترس را به دل مردم راه می‌دهد و در آن باید تنها روی صحنه اجرا کنی و نتوانی حتی یک خنده کوچک از مخاطبت بگیری دشوار است. و با این حال استیو مارتین هجده سال هر هفته با این ترس مواجه شد. به بیان او ده سال صرف یادگیری، چهار سال صرف اصلاح و چهار سال نیز به عنوان یک موفقیت عجیب سپری شد. چرا برخی افراد مثل همین مارتین به آدتهایشان پایبند میمانند؟ چه این عادت تمرین کردن روی شوخی ها باشد و چه نقاشی کشیدن و نواختن گیتار؟ در حالی که اکثر ما برای حفظ انگیزه میکنیم. چگونه باید آدتهایی را طراحی کنیم که به جای کم شدن ما را به خودشان جذب کنند؟ دانشمندان سالهاست که این پرسش را مورد مطالعه قرار دادهاند در حالی که هنوز مسائل زیادی برای یادگیری وجود دارد، برخی از یافته‌ها هموار مشاهده می‌شوند. برای حفظ انگیزه و دستیابی به سطوح بالای تمایل، باید روی وظایفی تلاش کنیم که میزان دشواریشان قابل مدیریت باشد. مغز انسان چالش را دوست دارد، اما چالشی که میزان دشواری آن در یک حد بهینه و معقول باشد. اگر تنیس را دوست دارید و قرار باشد یک مسابقه جدی را با یک کودک چهارساله ساله برگزار کنید، به سرعت حوصله تان سر می رود. این مسابقه خیلی آسان است. شما همه امتیازات را برنده می شوید. از آن سو اگر با یک تنیسور حرفه‌ای مثل راجر فدرر یا سرنا ویلیامز بازی کنید، باز هم به سرعت انگیزه خود را از دست می دهید. چون مسابقه خیلی دشوار است. حال بازی تنیس با فردی را تصور کنید که همتراز خودتان است. با پیشروی بازی چند امتیازی شما میبرید و چند امتیاز هم او میگیرد. شما شانس خوبی برای پیروزی دارید. البته به شرطی که واقعا تلاش کنید. تمرکز شما روی بازی است. سایر مسائل از ذهنتان پاک میشوند و خودتان را کاملا وقف وظیفه محوله میکنید. این یک چالش است که میزان دشواری آن قابل مدیریت است و یک نمونه عالی از قانون طلایی محسوب می شود. در اینجا نمودار قانون طلایی را داریم که به صورت زنگوله ای ابتدا با انگیزه کم است به اسم منطقه بیحسلگی. بعد کم کم انگیزه بیشتر می شود و به اوج می رسد که منطقه است و مجددن کم می شود تا به منطقه شکست می رسد. ماکسیموم انگیزش در زمانی رخ میدهد که چالش پیش رویتان دارای دشواری قابل مدیریت باشد در تحقیقات روانشناسی این بحث را تحت عنوان قانون یرکس داتسون می‌شناسند که میزان بهینه انگیختگی را در قالب نقطه میانی بین بی‌حوصلگی و هیجان نشان میدهد. قانون طلایی می گوید، انسانها بیشترین انگیزش را وقتی تجربه می‌کنند که روی وظایف متناسب با توانمندی‌های کنونیشان کار کنند، نه خیلی دشوار، نه خیلی ساده، بلکه متناسب. حرفه کمدی مارتین یک نمونه عالی و عملی از قانون طلایی است. هر سال او روتین کمدی خود را ارتقا داد، اما فقط به اندازه یکی دو دقیقه. او همواره بخش‌های جدیدی را به کارش اضافه کرد. اما تعداد کمی شوقی را ثابت نگه می داشت تا خنده های تزمینی را از مخاطبانش دریافت کند. در واقع، تعداد پیروزی های کافی برای حفظ انگیزه و البته تعداد شکست های کافی برای حفظ سخت کوشی به صورت تو وجود داشتند. وقتی یک عادت جدید را شروع می کنید، باید تا می توانید رفتارتان را در آسانترین حد ممکن نگه دارید، تا حتی در شرایط غیر ایدئال نیز بتوانید به آنها پایبند بمانید این ایده است که با جزئیات در بحث قانون سوم تغییر رفتار مطرح شده است اما وقتی یک عادت جا افتاد باید پیشرفت خود را با گامهای کوچک ادامه دهید همین های کوچک و چالشهای جدید شما را دلگرم می کنند اگر بتوانید به صورت صحیح در منطقه طلایی قرار بگیرید، میتوانید به شرایطی برسید که تمرکزتان صرفاً روی هدف جلب شود. در این شرایط، روی فعالیتی که به شما محول شده قوتور میشوید. دانشمندان سعی کردند این احساس را به صورت کمی توصیف کنند، آنها دریافتند برای رسیدن به این شرایط یک وظیفه باید تقریباً چهار درصد فراتر از توامندی کنونی شما باشد در زندگی واقعی نمیتوان میزان دشواری یک اقدام را به این شکل کمی بیان کرد اما ایده محوری قانون طلایی کماکان پابرجا برجا میماند کار روی چالش هایی که دشواریشان قابل مدیریت است، چیزی که در حوضه توانمندی شما باشد، برای حفظ انگیزه ضرورت دارد. بهبود به یک توازن ظریف نیاز دارد. باید دائما به دنبال چالش هایی بگردید که شما را به مرزهای های تواناییتان نزدیک کنند تا بتوانید پیشرفت کافی را داشته باشید و کماکان با انگیزه بمانید. رفتارها باید برای حفظ جذابیت و رضایت بخشی کماکان تازه بمانند. بدون تنوع از آنها خسته میشویم. شویم. احتمالاً خسته شدن بزرگترین مانع شما در مسیر جستجو برای بهبود شخصی است. چگونه وقتی از کار روی اهدافتان خسته شده اید کماکان تمرکز خود را حفظ کنید؟ پس از اینکه حرفه بیسبال من به پایان رسید، به دنبال یک ورزش جدید بودم. به یک تیم وزن برداری پیوستم و یک روز یکی از مربیان برتر کشور از باشگاه ما بازدید کرد. او در طول حرفه طولانی خود با هزاران ورزشکار از جمله تعدادی ورزشکار المپیکی کار کرده بود. خودم را معرفی کردم و شروع به صحبت درباره پروسه بهبود کردیم. پرسیدم بهترین ورزشکارها و افراد معمولی چه فرقهایی با هم دارند؟ آدمهای واقعا موفق چه کارهایی می کنند که بقیه انجام نمی دهند؟ او به عواملی اشاره کرد که شاید انتظار شنیدنشان را داشته باشید. ژنتیک، شانس، استعداد. اما در ادامه به نکته ای اشاره کرد که برایم غیرمنتظره بود. در یک مقطع کار به جایی می رسد که باید بتوانید خستگی تمرین روزانه و بلند کردن های تکراری و مداوم را کنترل کنید. جواب او مرا غافلگیر کرد، زیرا روی رویکرد فکری متفاوتی درباره اخلاقیات کاری بود. افراد درباره هیجانشان برای کار روی اهداف می گویند. چه صحبت از کسب و کار باشد و چه ورزش و چه هنر میشنوید که افراد از جملاتی نظیر باید آشغش باشی یا باید واقعا آن را بخواهی استفاده می کنند. در نتیجه بسیاری از ما وقتی تمرکز یا انگیزه خود را از دست می دهیم، افسرده میشویم زیرا فکر می کنیم افراد موفق دارای منبع بیکرانی از شور و عشق هستند. اما این مربی می گفت افراد واقعا موفق هم همانند سایر افراد با حس بی انگیزگی مواجه می شوند. تفاوت در اینجاست که آنها راهی را برای غلبه بر این حس بی حسلگی می آبند. برای رسیدن به تسلط باید تمرین کنید. اما هر قدر بیشتر روی چیزی تمرین کنید بیشتر تبدیل به یک امر روتین و خسته کننده می شود. وقتی که راه بیفتیم، دیگر می‌دانیم باید انتظار چه چیزهایی را بکشیم در نتیجه علاقه ما کمرنگ رنگ می‌شود گاهی اوقات اتفاقات خیلی سریعتر می‌افتند تنها کاری که باید انجام دهید چند روز حضور پشت سر هم در باشگاه یا انتشار چند مطلب به موقع در بلاگ است و اینکه نگذارید یک لغزش یک روزه چندان بزرگ به نظر بیاید مسائل خوب پیش میروند. به راحتی میتوان دلیل آورد که یک روز مرخصی اشکالی ندارد زیرا در جایگاه خوبی قرار دارید. بالاترین تهدید برای موفقیت نه شکست، بلکه بی‌حوصلگی است. از عادت‌هایمان خسته می زیرا دیگر ما را مجذوب نمی کنند. نتیجه قابل انتظار می شود. وقتی عاداتمان معمولی میشوند، پیشرفتمان را از مسیر خودش خارج میکنیم. چون به دنبال تازگی میرویم. شاید به همین دلیل است که در یک چرخه بیپایان گرفتار میشویم و از این ورزش به ورزش دیگر، از فلان رژیم به بهمان رژیم و از آن ایده کسب و کار به ایده بعدی میپریم. به محض اینکه که کوچکترین کاهش در انگیزه را تجربه کردیم، شروع به یافتن یک استراتژی جدید می حتی اگر همان استراتژی قدیمی هنوز هم جواب بدهد. همانطور که ماکیاولی اشاره کرد، اکثر افراد آنقدر تازگی و تنوع را دوست دارند که حتی در صورت عملکرد خیلی خوب، باز هم به اندازه افرادی که عمل کرده نادرستی دارند به دنبال تغییر می شاید به همین دلیل است که بسیاری از اعتیادآورترین محصولات آنهایی هستند که دائما فرمهایی از تازگی را به وجود می‌آورند. بازی‌های بازی تازگی بسری فراهم می کنند. ناسالم تازگی خوراکی فراهم می کنند. هر کدام از این تجربیات دارای علمون های گیر کننده مداومی هستند. در روانشناسی، این امر را تحت عنوان پاداش متغیر میشناسند. دستگاهای اسلات رایجترین نمونه جهانی هستند. قمارباز هر از چندگاهی یک سکه داخلشان زد و اهرم را میکشد. اما بازی زمانی این اتفاق قابل پیش نیست. گام پاداشها تغییر میکند. این تغییرات به بزرگترین افزایش دوپامین در بدن ختم می شود که حافظه را ارتقا می دهد و موجب شکلگیری سریعتر عادت می شود. پاداش های متغیر نمی توانند وسوسه و تمایل ایجاد کنند یعنی نمی توانید جایزهی که افراد به آن علاقه ای ندارند را در نظر بگیرید. آن را در بازه های متغیر به افراد بدهید و امید داشته باشید که ذهنیتشان عوض شود. اما چون این روی کردی برای تقویت تمایلاتی که همکنون تجربه میکنیم جواب میدهد زیرا از میزان خستگی و بی می میکاهد. نقطه مطلوب تمایل در جایی رخ می دهد که همه چیز پ پ بین موفقیت و شکست تقسیم شده باشد. نیمی از اوقات به آنچه میخواهید می رسید. نیمی از اوقات اینگونه نمی شود. باید به اندازه کافی پیروزی داشته باشید تا بتوانید رضایتمندی را تجربه کنید و البته به اندازه کافی بخواهید تا میل در وجودتان ایجاد شود. این یکی از عواید پیروی از قانون طلایی است. اگر همکنون به یک عادت علاقه دارید، کار روی چالش هایی که میزان دشواریشان قابل مدیریت است، روی کرده خوبی برای حفظ جذابیت آنهاست. البته همه ی عادت ها دارای معلفه پاداش متغیر نیستند و شما نیز چون این خواسته ای از آنها ندارید. اگر گوگل صرفا برخی اوقات نتایج جستجوی مفیدی را به من ارائه دهد، خیلی سریع سراغ یکی از رقبایش خواهم رفت. اگر اوبر فقط نیمی از سفرهای من را بپذیرد، شک دارم که دیگر از چنین سرویسی بهره بگیرم. اگر هر شب دندان‌هایم را نخ دندان بکشم و فقط گاهی اوقات دهانم تمیز شود، احتمالاً از این عادت دست خواهم کشید. پاداش ها متغیر باشند یا نباشند فرقی نمی‌کنند، چون هیچ عادتی تا ابد جذاب نمی‌ماند. در یک مقطع همه افراد با چالشی یکسان در مسیر بهبود شخصی مواجه می‌شوند. باید عاشق بی‌حوصلگی و خستگی ناشی از آن عادت شوید همه ما اهدافی داریم که دوست داریم به آنها برسیم و رویاهایی که تمایل داریم برآورده شوند اما در هر حوزه‌ای که بخواهید بهبود پیدا کنید باید همیشه تلاش کنید نه صرفاً زمانی که کار برایتان راحت یا جذاب است اگر همواره به اندازه کافی ثابت قدم نباشید نمی توانید به نتایج قابل توجه دست یابید می توانم تضمین کنم که اگر بتوانید یک عادت را شروع کنید و به آن پایبند بمانید، روزهایی خواهد رسید که دوست دارید آن عادت را کنار بگذارید. وقتی یک کسب و کار را شروع می کنید، روزهایی می رسد که دوست ندارید آن را ادامه بدهید. وقتی در باشگاه هستید، دوست ندارید برخی سطح را تمام کنید. وقتی موقع نوشتن می رسد، روزهایی هستند که دوست ندارید تایپ کنید. اما فرق آدمهای هرفايی و آماتور در این است که ها آنچه آزاردهنده یا دردناک است را پشت سر می‌گذارند. ها به برنامه پایبند میمانند. آماتورها می‌گذارند زندگی در کارشان مداخله کند. ها می می‌دانند چه چیزی برایشان مهم است و با هدف به سمت آن حرکت می‌کنند. آماتورها به واسطه ضروریات زندگی از مسیر اصلی خودشان رانده می شوند. دیوید کین، نویسنده و مدرس مدیتیشن به دانش آموزانش توصیه می کند که فقط در شرایط مساعد دنبال مدیتیشن نباشند. به همین ترتیب در ورزش یا نویسندگی یا هر حوزه دیگر هم نباید صرفاً در شرایط مساعد اقدام کنید. وقتی یک عادت برای شما اهمیت دارد، باید در هر شرایطی به آن پایبند بمانید. هرفهی ها حتی در شرایطی که حوصله درست و حسابی ندارند، اقدام می شاید از این اقدام لذت نبرند، اما بالاخره راهی را برای ادامه روندشان مییابند ستهای زیادی بود که دوست نداشتم آنها را در باشگاه بزنم، اما هیچگاه از انجامشان پشیمان نشده مقالات زیادی بود که دوست نداشتم بنویسم اما هیچگاه از انتشار به موقعشان پشیمان نشدم. روزهای زیادی بودند که دوست داشتم ریلکس کنم اما هیچگاه از حضور در محل کار و انجام اموری که برایم اهمیت داشتند پشیمان نشدم. تنها راه برای برتری یافتن این است که بیوقفه مجذوب کاری شویم که بارها و بارها آن را انجام می دهیم. باید عاشق بی و خستگی ناشی از آن کار شد. خلاصه فصل قانون طلایی می گوید، انسانها وقتی روی وظایفی کار می کنند که دقیقا در مرز توانمی های کنونیشان جای گرفته است به اوج انگیزه هایشان میرسند. بزرگترین تهدید موفقیت، نه شکست بلکه بی‌حوصلگی وقتی عادت‌ها روتین می‌شوند جذابیتشان را از دست می‌دهند و کمتر حس رضایت را به همراه دارند در نتیجه از آنها خسته میشویم. وقتی انگیزه وجود داشته باشد هر کس می‌تواند به سختی تلاش کند این توانایی پیشبرد کار در زمان بی‌حوصلگی است که تفاوتها را رقم میزنند. هرفهی به برنامه خود پایبند میمانند. آماتورها میگذارند زندگی در برنامه هایشان مداخله کند. عادت ها مبنایی برای ایجاد تسلط هستند. در شطرنج فقط زمانی یک بازیکن می تواند بر سطوح بعدی بازی تمرکز کند که حرکات پایه مهره در ناخودآگاهش جای گرفته باشند. هر خورده اطلاعاتی که به حافظه سپرده می شود، فضای ذهن را برای تفکر دشوارتر باز میگذارد. این امر برای هر تلاشی صدق می کند. وقتی حرکات ساده را آنقدر خوب بلدید که می توانید بدون تفکر آنها را انجام دهید، دیگر مجازید به جزئیات پیشرفت تر توجه کنید. در این راستا، عادتها به سنگ بنای هر گونه جستجوی شما برای برتری تبدیل می شوند. اما اواید ها با صرف برخی هزینه ها حاصل می شوند. در ابتدا، هر تکرار باعث می شود سرعت و مهارت شما توسعه یابد. اما در ادامه وقتی عادتتان تا ناخداگاه شد، حساسیت کمتری به بازخوردها پیدا می کنید. در واقع، گرفتار تکرارهای بدون تعمل می شوید. در این شرایط، امکان اشتباه بیشتر می شود. وقتی آنقدر خوب شده اید که همه چیز خودکار صورت میگیرد دیگر درباره نحوه اجرای بهتر امور فکر نمی کنید. نقطه قوت عادت ها این است که می توانیم کارها را بدون تعمل انجام دهیم. نقطه ضعف آنها این است که شما به اجرای کارها به شیوه این معین خو گیرید و دیگر به خطاهای های کوچکتان توجهی نمی کنید. پیش خودتان فرض می کنید که به واسطه کسب تجربه رو به بهبود هستید. اما در واقعیت صرفاً عادتهای کنونیتان را به کار می گیرید. نه اینکه بهترشان کنید. در واقع برخی تحقیقات نشان دادهاند که وقتی در یک مهارت تسلط یافتید معمولا به مرور زمان عملکردتان اندکی تضعیف می شود. معمولا کاهش جزئی در عملکرد دلیلی برای نگرانی نیست. شما به یک سیستم نیاز ندارید تا مسواک زنی دندان یا بستن بند کفش یا درست کردن فنجان چای صبحگاهی را بهبود دهید. درباره چنین عادتهایی رسیدن به یک حد استاندارد کفایت میکند هرقدر انرژی کمتری را روی انتخابهای بدیهی بگذارید میتوانید انرژی بیشتری را برای مسائل واقعا مهم هزینه کنید. اما وقتی میخواهید پتانسیلتان را به حد اعلی برسانید و به بهترین ستوح عملکرد برسید احتمالا به رویکرد ظریفتری نیاز داشته باشید نمی توانید همان مسائل پیشین را به صورت کورکورانه تکرار کنید و به یک شخصیت استثنایی تبدیل شوید. عادتها ضروری هستند اما برای رسیدن به درجه استادی کفایت نمی کنند. آنچه بدان نیاز دارید ترکیبی از عادت های و روی کرده حساب شده است. تسلط مساوی است با روی کرده حساب شده به اضافه عادتها. برای اینکه عالی شوید، باید یک سری مهارت‌های ویژه در نخودداگاهتان جای بگیرند. بازیکنان بسکتبال پیش از اینکه بتوانند با دست غیر تخصصیشان توپ را به صورت یک دستی داخل حلقه بیاندازند، باید بتوانند بدون تعمل و به صورت ناخودداگاه ریبلنگ را انجام دهند. جراحها باید اولین برش را آنقدر تکرار کنند تا بتوانند این کار را با چشمان بسته هم انجام دهند و روی سطح ها متغیر دیگری که حین جراحی پیش می آید تمرکز کنند اما پس از اینکه بر یک عادت مسلط شدید باید دوباره تلاش هایتان را از سر بگیرید و شروع به ایجاد عادت بعدی کنید تسلط ای است که طی آن تمرکز خود را روی یک المان کوچک از موفقیت می‌گذارید، آن را تکرار می‌کنید تا به یک مهارت درونی تبدیل شود و سپس از این عادت جدید به عنوان مبنای پیشروی به سمت مرحله بعدی توسعه بهره می‌گیرید. اجرای وظایف قدیمی برای بار دوم ساده‌تر می‌شود اما در مجموع باری از روی دوش شما برداشته نمی‌شود. زیرا همکنون انرژی خود را روی چالش بعدی صرف می کنید. هر عادت باعث می شود، سطح جدیدی از عملکرد کرد برای باز شود. این یک چرخه بیپایان است. قورسے تسلط به این نیاز دارد که به تدریج لایه های بهبودتان را روی یکدیگر قرار دهید و هر عادت بر مبنای قبلی شکل بگیرد تا زمانی که یک سطح جدید عمل کرد برایتان باز شود و به گستره بالاتری از مهارت‌های درونی برسید. اگر اگرچه عادتها قدرتمند هستند، آنچه بدان نیاز دارید، آگاهی نسبت به عملکردتان درگذر در گذر زمان است تا بتوانید به پروسه اصلاح و بهبود خودتان ادامه دهید. دقیقا، همان زمانی که احساس کردید بر یک مهارت مسلط شده اید، همان زمانی که حس خودکار انجام دادن امور و راحتی اجرای آنها به ذهنتان خطور کرد، باید، از افتادن در دام خود خوشنودی برحضر باشید. راهکار چیست؟ سیستمی برای انعکاس وضعیتتان و بازبینی آن برپا کنید. چگونه عادتهایتان را بازبینی کنید و اصلاحات را انجام دهید؟ در سال 1986، لوسانجلس لیکرز یکی از مستعدترین تیمهای بسکتبال تاریخ را داشت اما به ندرت آنها را به خاطر این موضوع به خاطر می‌آورند. این تیم فصل 1985-1986 NBA را با رکورد قابل توجه 29 پیروزی و 5 شکست آغاز کرد. سرمربی آنها پت رایلی پس از اتمام فصل گفت متخصصان میگفتند که آن تیم احتمالاً یکی از بهترین تیم‌های تاریخ بسکتبال بوده است. عجیب است که لیکرز در پلی‌آف 1986 لغزید و فصل را با شکست در فینال کنفرانس غرب به پایان رساند. بهترین تیم در تاریخ بسکتبال حتی نتوانست در قهرمانی NBA مسابقه بدهد. پس از این ضربه آخر رایلی خسته شد از بس که درباره میزان استعداد بازیکنانش و میزان امیدواری به آن تیم صحبت کردند. او نخواست زوال تدریجی عمل کرد که پس از درخشش ظاهر شده بود را ببیند. میخواست لیکرز هر شب با حد پتانسیل پتانسیل خود بازی کند. در تابستان 1986 برنامه ای ریخت تا دقیقا همین رویه را پیش بگیرد. سیستمی که آن را برنامه بهترین تلاش در حرفه سی بی مینامند. رایلی توضیح داد وقتی بازیکنها برای اولین بار به لیکرز می پیوستند، آمارهای بسکتبالشان را از زمانی که در دبیرستان بازی میکردند تا به امروز رهگیری میکردیم. این پروسه را برداشتن آمارها مینامند. به دنبال یک سنجه دقیق بودیم تا متوجه شویم که یک بازیکن توان انجام چه کاری را دارد سپس او را در قالب برنامه تیم میساختیم با این ایده که بتواند نمره متوسط خود را حفظ کند و سپس آن را بهبود دهد پس از اینکه سطح پایه عملکرد یک بازیکن تعیین شد رایلی یک گام کلیدی را اضافه کرد او از هر بازیکن خواست که در طول فصل خروجی خود را حداقل به میزان یک درصد بهبود ببخشد. اگر موفق به این کار می لقب CBE یا بهترین تلاش در حرفه به آنها داده می شد. همچون تیم دوچرخه سواری انگلستان که در فصل یک مورد بحث قرار گرفت، لیکرز در پی رسیدن به قله عمل کرد از طریق بهبودهای جزئی در هر روز بود. رایلی مراقب بود که ایده سی بی ای به آمار و ارقام محدود نشود، بلکه افراد بهترین تلاششان را از منظر روحی، ذهنی و جسمی ارائه کنند. اگر بازیکنان به حریف اجازه می‌دادند به سمتشان بدود و از همین طریق خطا به نفع تیم می اگر برای توبهای معلق در هوا شیر جمی اگر سعی می کردند اقدام به ریباند توبهای نامعلوم کنند، اگر در هنگام دفاع به همتیمی کمک می کردند تا نگذارند بازیکن حریف فرار کند و سایر اقدامات قهرمانانه را انجام می دادند، پاداش می گرفتند. به عنوان نمونه، فرض کنید مجیک جانسون بازیکن ستاره لیکرز در آن دوران در یک بازی یازده امتیاز، هشت ریباند، دوازده پاس به گل، دو توپ ربایی و پنج لو دادن توپ دارد. همچنین مجیک به خاطر ای که برای یک توپ معلق در هوا زده یک امتیاز مثبت گرفته است. او مجموعاً 33 دقیقه را در این بازی تخیلی بازی کرده است. آمارهای مثبت یک به علاوه دو، به علاوه دوازده، به علاوه هشت، به علاوه یازده در مجموع به 34 میرسند. سپس پنج دادن توپ را کم میکنیم. سی و چهار منهای پنج تا به بیست و نه برسیم در نهایت امتیاز بیست و نه را بر سی وسه دقیقه بازی تقسیم کردیم بیست و نه تقسیم بر سی وسه مساوی است با هشت صد و هفتاد و نه هزار رم عدد جادویی مجیک در اینجا هشت صد و هفتاد و نه هزار رم است این عدد برای همه بازی های بازیکن محاسبه و از هر بازیکن خواسته شد که سی متوسط خود را به میزان یک درصد بهتر کند. رایلی سی فعلی هر بازیکن را نه فقط با عملکرد کرده گذشتهش بلکه با سایر بازیکنان لیگ مقایسه می همانطور که او می گوید اعضای تیم را در کنار همپستی هایشان در سایر تیم ها که شرح وظایف مشابهی داشتند مقایسه می کردیم. جکی مکمولان ورزشی نویس اشاره کرد رایلی عملکردهای برتر لیگ در هر هفته را با حروف بزرگ روی تخت سیاه می نوشت و آنها را با بازیکن های هم در تیم خودش مقایسه میکرد بازیکن های مطمئن و قابل اتکا غالبا ای در حدود 6 کسب میکردند در حالی که بازیکن های ستاره حداقل به 8 دهم می رسیدند مجیک جانسون که 138 تریپل دابل را در حرفه خود ثبت کرده است، غالباً نمره بالاتر از یک به دست می آورد. همچنین، لیکرز با مقایسه داده های سی بی پیشین روی پیشرفت سال به سال تکید داشت. رایلی گفت، داده های نوامر 1986 را جمع می زدیم، آن را در کنار نوامبر 1985 می گذاشتیم، و به بازیکنان نشان میدادیم که آیا نسبت به مقطع مشابه سال قبل بهتر عمل کرده اند یا نه سپس آمارهای عملکردیشان برای دسامبر 1986 را به آنها نشان میدادیم که با نوامبر مقایسه شده بود تیم لیکرز سی بی ای را در اکتبر 1986 راه انداخت 8 ماه بعد آنها قهرمان NBA بودند سال بعد پت رایلی تیمش را به یک عنوان دیگر رساند و لیکرز پس از بیست سال به اولین تیمی تبدیل شد که توانست دو قهرمانی متوالی NBA را به دست آورد. او پس از این اتفاقات گفت حفظ یک طرح مهمترین نکته برای هر شرکت است. راه موفقیت این است که نحوه انجام صحیح امور را بیاموزیم و سپس هر بار همین روش صحیح را تکرار کنیم. برنامه سی بی ای یک نمونه عالی از قدرت انعکاس و بازبینی است. لیکرز از پیش استعداد داشت. سی بی ای به آنها کمک کرد بیشترین بازده را از داشته‌هایشان بگیرند و کاری کرد که مطمئن شوند عادت‌هایشان به جای افت، بهبود یابد. انعکاس و بازبینی بهبود طولانی مدت همه عادت‌ها را ممکن می‌کند. زیرا شما را از اشتباهاتتان آگاه می سازد و مسیرهای بهبود ممکن را نشان می دهد. بدون انکاس، می‌توانیم بهانه بگیریم، توجیه کنیم و به خودمان دروغ بگوییم. هیچ پروسه‌ای برای تعیین افول یا رشد عملکردمان در قیاس با دیروز نداریم. عملکردهای برتر را در همه حوزه ها از طریق انواع مختلفی از انکاس و بازبینی میسنجند، و این پروسه لزوما نباید پیچیده باشد. الیود کیپچوگ، دونده کنیایی و یکی از برترین های دوی ماراتون در همه دوران و برنده مدال طلای المپیک است. او کماکان پس از هر تمرین یادداشت برمیدارد و در آن تمرینات روز را مورد بازبینی قرار می دهد و به دنبال نواهی بهبود می گردد. به همین ترتیب، کیتی لدکی، که در شنا مدال طلا برنده شد نیز از یک تا ده به میزان خوب بودن خودش نمره میدهد و هن نکاتی را درباره تغذیه و کیفیت خوابش یادداشت میکند او همچنین زمانهایی که توسط سایر شناگران ثبت شده است را یادداشت میکند در انتهای هر هفته مربیش سراغ یادداشتهای او میرود و هن نظراتش را به آنها اضافه میکند فقط ورزشکارها اینطور نیستند وقتی کریس راک کمدین در حال آماده سازی محتوای جدیدش است، ابتدا چندین مرتبه در کلاب های شبانه کوچک حاضر می شود و صدها شوخی مختلف را آزمایش می کند. او یک دفترچه را روی صحنه می آورد و بخش که خوب پیش رفتند و بخش که باید اصلاح شوند را یادداشت می کند. آن تکه شوخی‌هایی که خوب جواب دادهاند در فهرست باقی می‌مانند و سنگ بنای برنامه جدیدش می‌شوند مدیران و سرمایه‌گذاران را شناسم که دفترچه تصمیم دارند و تصمیمات بزرگی که هر هفته می‌گیرند علت اتخاذ این تصمیمات و انتظاری را که از نتیجه آن دارند در آن می‌نویسند آنها در انتهای هر ماه یا در انتهای سال انتخاب را مرور می کنند تا ببینند که کدام بخشها درست و کدام بخشها اشتباه پیشرفته است. بهبود صرفاً به عادات یادگیری مربوط نمی شود بلکه راجع به اصلاح و تنظیمشان هم هست. انکاس و بازبینی تضمیم می کند که شما وقتتان را روی چیزهای درست بگذارید و در زمانهای لازم اصلاحات لازم را پیاده کنید. همچون پترایلی که هر شب میزان تلاش بازیکنانش را اصلاح و تنظیم می کند. دوست ندارید که اگر عادتی تاثیرگذاریش را از دست داد مدام همان را تکرار کنید. شخصا حالات مقدماتی و اصلی انعکاس و بازبینی را به کار می گیرم. هر دسامبر بازبینی سالانه ای انجام می دهم که در آن اتفاقات سال گذشته منعکس می شود. با شمارش تعداد مقالاتی که منتشر کرده تعداد جلسات ورزشی که در آن حضور داشتهام تعداد مکانهای جدید که بازدید کرده و مواردی از این دست عادت سالانهام را جمع بندی میکنم. در ادامه با پاسخگویی به سه پرسش درباره پیشرفت یا عدم پیشرفت خودم اظهار نظر میکنم. یک. امسال چه چیزهایی خوب پیشرفتند؟ دو. امسال چه چیزهایی چندان خوب پیش نرفتند؟ سه، چه چیزهایی یاد گرفتم؟ شش ماه بعد، وقتی تابستان از راه رسید، یک گزارش یک پارچه را تهیه می کنم. همه، من هم اشتباهات زیادی انجام می دهم. گزارش یک پارچه باعث می شود، نقاط اشتباه هم را متوجه شوم و انگیزه لازم را برای بازگشت به مسیر صحیح پیدا کنم. از آن به عنوان زمانی برای بازبینی ارزش اصلی خودم بهره می گیرم و اینکه آیا مطابق با این ارزش زندگی کرده هم یا خیر. اینجا زمانی است که به بررسی هویتم می و مسیرهایی که می توان برای رسیدن به شخصیت مطلوب ط را سبک سنگین می کنم. گزارش یک پارچه سالانهم به سه سؤال پاسخ می دهد. یک. ارزش‌های اصلی که کار و زندگی من را هدایت می‌کنند چه هستند؟ دو، همکنون چه میزان یک یکپارچگی و درستی در کار و زندگی من وجود دارد؟ سه، چگونه می‌توانم استانداردهای بالاتری را در آینده پیدا کنم؟ تهیه این دو گزارش خیلی طول نمی‌کشد، فقط چند ساعت در سال، اما آنها دوره‌های اساسی برای اصلاح محسوب می‌شوند. زمانی که توجه نزدیکی به زندگی خودم ندارم، همین گزارش‌ها کاری می‌کنند که دوچار لغزش تدریجی نشوم. آنها هر سال به من یادآوری می‌کنند که هویت مطلوبم را مرور کنم و ببینم که چطور عادتهایم در راستای رسیدن به شخصیت مطلوب به من یاری می‌رسانند. آنها نشان می‌دهند که باید چه زمانی عادتهایم را بروز کنم و چالش‌های جدیدی را بپذیرم و همچنین چه زمانی باید پاپس بکشم و روی اصول تمرکز کنم؟ همچنین انعکاس مسائل نیز میتواند دید خوبی را برایم به وجود آورد. عادت روزانه به واسطه تاثیر تدریجیشان قدرتمند هستند، اما وسواس زیاد درباره هر انتخاب روزمره مثل این میماند که با فاصله دو سانتی متری خودتان را در آینه نگاه کنید. در این فاصله می توانید همه نقایص جزئی را ببینید و دید کلیتان را از دست میدهید این میزان از بازخورد اضافی است برعکس اگر اصلا عادت هایتان را مرور نکنید مثل این میماند که اصلا خودتان را داخل آینه نبینید در این شرایط از نقصانهایی که به سادگی قابل اصلاح هستند لکه روی پیراهنتان یا تکی غذایی که لای دندانتان گیر کرده است آگاه نمی شوید. این میزان از بازخورد بسیار اندک است انعکاس و بازبینی مداوم مثل این میماند که از یک فاصله معقول خودتان را در آینه مشاهده کنید می توانید تغییرات مهمی را که باید انجام دهید ببینید بدون اینکه تصویر کلی را نادیده بگیرید دوست دارید تصویر کلی کوه را مشاهده کنید نه اینکه با وسواس درگیر هر برآمدگی و فرورفتگی آن شوید نهایتا انعکاس و بازبینی یک چهارچوب ایدئال را برای بازبینی یکی از مهمترین ابعاد تغییر رفتار یعنی تغییر هویت شما ارائه می کند چگونه عادتهایی را از بین ببرید که موجب پس رفتتان میشوند. در ابتدا، تکرار یک عادت برای ایجاد سرنخهایی از هویت مطلوبتان ضرورت دارد اما وقتی کاملا به هویت جدیدتان خو گرفتید همان باورها می توانند مانعی برای رشد شما به سطح بالاتر باشند وقتی این باورها به ضرر شما میشوند هویتتان نوعی غرور ایجاد میکند که باعث میشود نقاط ضعفتان را انکار کنید و شما را از رشد واقعی باز میدارد این یکی از بزرگترین نقاط ضعف ایجاد عادت هاست هر یک ایده قداست بیشتری در دیدگاه شما داشته باشد یعنی خیلی عمیق در هویت شما ریشه دوانده باشد خیلی شدیدتر از آن دفاع خواهید کرد و انتقادات نسبت به آن را نمیپذیرید این موضوع در هر صنعتی مشاهده می شود معلم مدرسه ای که روشهای های خلاقانه تدریس را نادیده میگیرد و به برنامه های آموزشی درست و آزمون پستاده خود پایبند می ماند. مدیر کهنهکاری که متعهد شده است کارها را به شیوه خودش انجام دهد، جراحی که ایده های همکاران جوانتر را رد می کند. گروه موسیقی که اولین آلبومشان متوش کننده است و سپس روی همان گیر میکنند. هرقدر پیوند یک ایده با هویتمان تنگ تر باشد رشد کردن نسبت به آن دشوار می شود. یک راهکار این است که نگذارید جنبه‌ای خاص از هویتتان غالب شود و عمده شخصیتتان را در بر بگیرد. به بیان پلگراهام سرمایه گذار، هویتتان را کوچک نگه دارید. هر قدر بیشتر اجازه دهید که یک باور ویژه شما را تعریف کند، قابلیت کنار آمدن با چالشهای زندگی کمتر خواهد شد. اگر همه چیز را در حضور به عنوان پوینت گارد حضور به عنوان شریک شرکت یا هر چیز دیگر خلاصه کنید از دست دادن آن جنبه زندگی موجب نابودیتان خواهد شد. اگر وگان هستید و بیماری خاصی برایتان پیش بیاید که مجبور به تغییر رژیم خود شوید دچار بحران هویتی میشوید. وقتی خیلی سفت و سخت به یک هویت پیوند بخورید شکننده خواهید شد. کافی است آن هویت را از دست بدهید تا خودتان را ببازید. در اکثر دوران جوانی ورزشکار بودن به بخش بزرگی از هویت من تبدیل شده بود. پس از اینکه حرفه هم در بیسبال به پایان رسید خیلی کشمکش داشتم تا بتوانم خودم را پیدا کنم وقتی کل عمرتان را صرف تعریف خودتان در یک مسیر خاص میکن و آن مسیر از بین می رود چه وضعیتی پیدا می کنید؟ کهن سربازان ارتش و کارافرینان اسپق نیز دارای احساسات مشابهی هستند. اگر هویت شما در باورهای نظیر من یک سرباز عالی هستم خلاصه شود، وقتی دوره خدمتتان به پایان برسد، چه اتفاقی می افتد؟ بسیاری از صاحبان کسب و کار، هویتشان در راستای باورهایی همچون من مدیر هستم یا من بنیانگذار هستم شکل می گیرد. اگر هر لحظه کاری خود را صرف تلاش برای کسب و کارتان کنید پس از فروش آن چه حسی پیدا خواهید کرد کلید تعدیل این خسرانهای هویتی باز تعریف خودتان است تا مطمئن شوید که حتی در صورت تغییر مسئولیت نیز جنبه های مهمی از هویتتان را حفظ می کنید من یک ورزشکار هستم به من شخصیتی هستم که از نظر ذهنی سرسخت بوده و عاشق چالش‌های فیزیکی است، تغییر می‌کند. من یک سرباز خوب هستم، به من شخصیتی هستم که دیسیپلین دارم، قابل اعتمادم و کارم در قالب تیم خوب است، تغییر می‌کند. من مدیرامل هستم، به من شخصیتی هستم که چیزهای مختلفی می‌سازد و خلق می‌کند، تغییر می‌کند. در صورتی که هویت به شکل صحیح انتخاب شود می میتواند به جای شکنندگی انعطاف پذیر باشد همانند آبی که پیرامون یک جریان دارد هویت نیز خودش را با شرایط متغیر هماهنگ کند، نه اینکه با آنها مقابله کند نقل قولی که میشنوید از تاو تچینگ به خوبی این ایده ها را ترسیم می کند. انسانها نرم و انعطاف پذیر زاده میشوند وقتی میمیرند خشک و سخت میشوند گیاهان نرم و لطیف زاده میشوند وقتی میمیرند خشک و ترد میشوند هر کسی که سفت و انعطاف ناپذیر است پیرو و هواخواه مرگ است هر کسی که نرم و منعطف است پیرو و هواخواه زندگی است سخت و خشک خواهد شکست نرم و انتاف پذیر چیره خواهد شد لاوتسه عادت ها اواید پرشماری دارند اما نقطه ضعفشان این است که باعث می میشوند روی الگوهای تفکر و اقدامات پیشینمان گیر کنیم حتی زمانی که دنیای پیرامونمان تغییر میکند همه چیز متغیر است زندگی دائما در حال تغییر است بنابراین باید به صورت متناوب خودتان را بررسی کنید تا ببینید آیا عادتها و باورهای پیشینتان هنوز در خدمت شما قرار دارند یا خیر؟ فقدان خداگاهی یک سم است. انعکاس و بازبینی نقش پادزهر را ایفا میکند. کند. خلاصه فصل نقطه قوت عادات این است که میتوانیم کارهای من را بدون تعمل انجام دهیم. نقطه ضعفشان این است که دیگر به خطاهای کوچک من در اجرای امور توجه نمی کنیم. مساوی است با روی کرد حساب شده به اضافه عادتها. انعکاس و بازبینی پروسه است که به شما اجازه میدهد نسبت به عملکردتان در گذر زمان آگاه شوید. هرقدر بیشتر به هویتتان وابسته شوید، امکان رشد فراتر نسبت به آن دشوارش را به یک شخص بدهید نمی توانید ادعا کنید که او ثروتمند است. اما اگر یک کیسه بیشتر بدهید چه؟ و یکی دیگر و بعدی بالاخره جایی می رسد که باید اضان کنید فرد با یک سکه بیشتر میتواند به جرگ ثروتمندان بپیوندد. می توان همین مسئله را درباره عادت اتمی ذکر کرد. آیا یک تغییر کوچک میتواند زندگی شما را متحول کند؟ احتمالا میگویید که بعید است اما اگر یک تغییر کوچک دیگر هم اعمال کنید چه؟ یکی دیگر و بعدی بالاخره جایی می رسد که زندگی شما با یک تغییر کوچک دوچار تحول خواهد شد. جام مقدس تغییر عادت، فقط یک بهبود یک درصدی نیست، بلکه هزاران مورد از این بهبود هاست. مجموعه ای از عادت های اتمی هستند که روی یکدیگر انباشته می شوند و هر کدام یکی از واحد های اساسی در کلیت سیستم هستند. در ابتدا بهبود های کوچک غالباً بیمعنی به نظر میرسند. زیرا وزن کلی سیستم باعث می شود که به درستی دیده نشوند. همونطور که یک سکه نمیتواند فرد را ثروتمند کند، یک تغییر مثبت نظیر یک دقیقه مدیتیشن یا مطالعه یک صفحه در هر روز نیز احتمالا نتواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. اما به تدریج و وقتی این تغییرات کوچک را لایه لایه روی یکدیگر قرار میدهید، ترازوی زندگی کم کم شروع به حرکت میکند. هر بهبود همچون یک شن است که در سمت مثبت ترازو ریخته می شود که کم کم اوزا را به نفعتان تغییر می دهد. در نهایت، اگر به آن پایبند بمانید، به یک نقطه عطف خواهید رسید. ناگهان، پایبندی به عادتهای خوب برایتان ساده تر می شود. دیگر، وزن سیستم به نفعتان عمل می کند، نه اینکه در مقابل شما باشد. در طول این کتاب، به یک دوجین داستان درباره عملکردهای برتر اشاره کردیم. درباره برندگان مدال طلا در المپیک، هنرمندان برنده جایزه، رهبران کسب و کار، پزشکان ناجی زندگی و های ستاره شنیدیم که همگی از دانش های کوچک برای تسلط بر مهارتها و رسیدن به قله حوزه‌ی عملکرد خودشان بهره گرفتند. هر یک از افراد، تیمها و کمپانیهایی که در این کتاب پوشش دادیم با موقعیتهای متفاوتی مواجه شدند. اما در نهایت با یک روش یکسان پیشرفت کردند. از طریق تعهد به بهبودهای کوچک، ماندگار و تسلیم نشدنی. موفقیت هدفی نیست که بخواهید بدوید تا به آن برسید و از خط پایان عبور کنید. یک سیستم از بهبودها و پروسه بیپایان است که باید اصلاح شود. در فصل یک گفتم اگر با تغییر آدتهایتان مشکل دارید، مشکل خودتان نیستید. سیستمتان مشکل دارد. آدتهای بد بارها خودشان را تکرار می کنند. نه به این خاطر که نمی‌خواهید آنها را تغییر دهید، بلکه به خاطر سیستم نادرستی که برای تغییرشان دارید. از آنجایی که به پایان این کتاب نزدیک می شویم امیدوارم که عکس موضوع صدق کند با انایت به چهار قانون تغییر رفتار شما مجموعه ای از ابزارها و استراتژی ها را در اختیار دارید که می توانید از آنها برای ایجاد سیستم های بهتر و شکل دهی به عادت های برتر بهره بگیرید گاهی اوقات یک عادت را به سختی به خاطر می آورید و باید آن را شفاف و آشکار کنید در سایر موارد دوست ندارید کار را شروع کنید و باید آن را جذاب کنید. در بسیاری از موارد امکان دارد یک عادت را دشوار ببینید و باید آن را ساده کنید. گاهی اوقات هم دوست ندارید به یک عادت پایبند بمانید و باید آن را رضایت بخش کنید. تلاش ها در اینجا به راحتی صورت می‌گیرند. مشهود جذاب ساده رضایت بخش تلاش ها در اینجا دشوارند نامشهود غیر جذاب دشوار مایوس کننده باید عادت های خوبتان را به سمت مشهود جذاب ساده و رضایت بخش سوق دهید در حالی که باید عادت های بدتان را به سمت نامشهود غیر جذاب دشوار و مایوس کننده هدایت کنید این یک پروسه پیوسته است. هیچ خط پایانی وجود ندارد. هیچ راهکار دائمی وجود ندارد. هر زمان که به دنبال بهبود میگردید، میتوانید در چهار قانون تغییر رفتار بگردید تا اینکه که تنگنای بعدی از راه برسد. آن را شفاف و آشکار کنید. آن را جذاب کنید. آن را ساده کنید. آن را رضایت بخش کنید. همواره به دنبال راهکار بعدی باشید، تا یک درصد بهتر شوید. راز کسب نتایج ماندگار این است که هیچگاه بهبود را متوقف نکنید. اگر متوقف نشوید، خواهید دید که قادر به ایجاد چه چیزهای خارق العاده هستید. اگر کار کردن را متوقف نکنید، خواهید دید که چه کسب و کار خارق العاده ساخته می شود. اگر تمرین را متوقف نکنید، خواهید دید که چه بدن فوق العاده خواهید داشت. اگر یادگیری را متوقف نکنید، خواهید دید که چه دانش فوقلادهی به وجود می آید. اگر پسنداز را متوقف نکنید، خواهید دید که چه آینده فوقلادهی ساخته می شود. اگر اهمیت دادن به دیگران را متوقف نکنید، خواهید دید که چه دوستی های فوقلادهی شکل می گیرند. های کوچک به صورت مجزا روی یکدیگر جمع نمی شوند. آنها، ترکیب میشوند. این قدرت عادتهای اتمی است. تغییرات کوچک نتایج قابل توجه.